این داستان سه پسر خوشبخت یکی بود یکی نبود زیر گنبت آبی آسمون پدری بود که سه فرزند داشت روزی اونها رو صدا کرد و به اولی یه خروس داد به دومی دو یه داست داد و به سومی سو یه گربه بعدم گفت من پیر شدم و مرگم نزدیکه آرزو دارم قبل از مرگم بتونم برای شما پولی دست و پا کنم ولی نتونستم چیزایی که به شما دادم ارزش چندانی نداره فقط بستگی داره چطور ازش استفاده کنین و راه درست استفاده رو پیدا کنین دنبال سرزمینی بگردین که این چیزا در اونها ناشناخته است، در چنین جاهایی میتونین ثروتی به هم بزنین بعد از مرگ پدر پسر بزرگتر با خروسش راه افتاد سرزمین های مختلف رو زیر پا گذاشت ولی هر جا میرفت این حیوان رو میشناختن در شهرهای مختلف خررو ها رو میدید که روی برج کلسان نشستن و با وزش باد حرکت میکنن. در روستا هم که بانگ خروس ها شنیده میشد و هیچکس از دیدن اونها تعجب نمیکرد. به نظر می رسید از این راه نمی تونه پول و پله به هم بزنه. در آخر بر حسب اتفاق وارد جزیره شد که مردم اون در باره خروس هیچی نمیدونستند. و حتی نمیدونستن چطور وقت خودشون تنظیم کنن مسلمان میدونستند چه وقت صوبه و چه وقت شبه ولی ساعتهای مختلف شبانه روز رو نمیتونستن تشخیص بدن او به مردم گفت ببینین چه حیوان مقروریه روی سرش چه تاج یاقوتی رنگی داره و چطور مثل جنگجو جوها زره بوشیده شبا خروز با فاصله های مساوی سه بار قوقل قوقو میکنه و وقتی بار سوم صدای خروس بلند میشه خورشید طلو میکنه. باید توجه کنین که اگر وسط روز صدای خروس شنیده شد یعنی در وضعیت هوا حتما تغییری به وجود میاد. مردم از شنیدن این حرفها خیلی خوشحال شدن. اون شب هیچ کدوم از اهالی جزیره نخوابیدن و همه با خوشحالی و هیجان بانگ خروس رو شنیدن که در ساعت دو، ساعت چهار و ساعت شش وقت رو اعلام کرد صبح روز بعد مردم پرسیدن که آیا حیوان رو می و اگه می چه قیمتی داره اونم در جواب گفت قیمت اون برابر میزان طلاییه که یه اولاق بتونه حمل کنه همه با هم گفتن چقد احمقانه روی جونور به این گرانبهای چه قیمت کمی گذاشته بعد با میل و رقبت طلاهایی رو که خواسته بود بهش دادن وقتی که اون با این همه ثربت به خونه برگشت برادراش حیرت کردن و برادر دوم گفت چطوره منم به راه بیفتم و از شر این داس خلاص بشم و از قبل اون پولی در بیارم ولی به نظر غیر ممکن می آمد. چون هر جا میرفت کارگرانی رو می دید که داسی به روی شونه خودشون آویزون کرده بودن سرانجام وارد جزیره شد که مردم اون چیزی از داس دونستن و وقتی میخواستند گندم درو کنن یه عراده توپ به گندمزار میبردن و با گلوله توپ گندما رو درو میکردن این روش خوبی نبود گلوله گاهی به خوشه گندم و گاهی به ساقه می خورد این روش نه تنها صدای ناخوشایندی هم داشت بلکه مقدار زیادی گندم رو ضایع میکرد برادر دومی دو دست به شد و شروع کرد به درو کردن گندما با داس. اون چنان خوب و سری کار میکرد که دهان مردم از تعجب باز مونده بود. مردم اون جزیره با هم قرار گذاشتن به هر قیمتی شده دو سو از بخرن. برای همین بهش به اندازه یک بار اسب طلا دادن. حالا نوبت برادر سومی سو بود که جای رو پیدا کنه و گربش رو آب کنه. اونم تا وقتی در سرزمین خودش جستجو میکرد به نتیجه نرسید. گربه ها همه جا فراوون بودن. اونقدر که مردم برای خلاص شدن از شر اونا گربه های نوزاد و توی حوز مینداختن و خفه میکردن. چندی که روی دریا سفر کرد، بالاخره از بخت خوشش به جزیرهی رسید که مردم اون رنگ گربه رو ندیده بودن. موش ها همه جا رو اشغال کرده بودن و هرچه میخواستن میکردن به انباریها حمله میکردن و روی میز و سندلی ها و خیز میکردن و به سابخونه ها محل نمیذاشتن مردم از تا به سطوح اومده بودن حتی پادشاه هم در قصرش از شر موشها در امان نبود همه جا صدای جیرجیر جیر موش شنیده میشد و اونها هر چی رو که به دستشون میرسید رها کرد در یک چشم به هم زدن موشهای یکی دوتا اتاق رو نابود کرد مردم کار گربه رو که دیدن از پادشاه خواستن هر جوری که شده این جونور شگفتانگیز رو بخره پادشاه هر اندازه که برادر سومی پول خواست یعنی یک بار قاطر طلا بهش داد به این ترتیب برادر ثومی هم با گنجینه از طلا به خونه برگشت از اون طرف گربه غرق در فراوانی و نعمت شد و در قصر پادشاه اونقدر موش کشت که از شمار بیرون رفته بود تا اینکه بالاخره گرم شد و آب خواست لحظه‌ای حرکت ایستاد سرشو بالا کرد و صدای بلند از خودش در آورد وقتی این صدای عجیب به گوش پادشاه و ساکنان قصر رسید وحشت کردند و همه سراسیمه از قصر فرار کردند در این گیرودار به فکر پادشاه رسید که با مشاورای خودش مشورت کنه اونا گفتند بهتره که برای گربه بفرستن و ازش بخوان که قصر رو ترک کنه و بهش بگن که اگر این کارو نکنه به زور متوسل میشن مشاورا گفتند بهتره با همون تاون موشها بسازیم ما به اونها عادت کردیم و صد بار بهتر از اینه که به دست این حیولا بیفتیم اونا جوان شجایی رو انتخاب کردن و نزد گربه فرستادند که بپرسه آیا حاضره به شکل مسالمت آمیز قصر را ترک کنه ولی گربه که تشنه هم شده بود همش از خودش صدا میداد جوان فکر کرد که میگه معلومه که حاضر نیستم از اینجا بیرون برم بنابراین برگشت و جواب گربه را به پادشاه گفت مشاورا گفتن راهی دیگه جز زور وجود نداره توپ آوردن و قصر رو به توپ بستند. طولی نکشید که شله های آتش امارت قصر رو فرا گرفت. وقتی شراره های آتیش به اتاقی رسیدند که گربه در درون بود، گربه خیزی برداشت و از پنجره بیرون رفت و فرار کرد. گربه فرار کرد و به جایی رفت که هرگز کسی نمیدونست. ولی مردم شهر،